دوستان به دانشکده کوچکه کتاب مقدس خوش اومدیم. هدف این کلاس بررسی کل کتاب های کتاب مقدسه به طوری که ما سعی می کنیم چیزهای بسیاری از حقیقه الهی رو یاد بگیریم و اونها رو در زندگی روزانه خودمون به کار ببندیم. و هیچ درسی به اندازه مطالعه الان ما در زندگی عملی تر نیست. بررسی ما به احتجادید رسید و حالا نامه اول پولس به ایمانداران قرنتوس رو با هم بررسی میکنیم. یکی از مشکلاتی که تا همین امروز در کلیساها دیده میشه، مشکل تفرقه است. عزیزان خیلی تو شده که از من پرسیدن چرا کلیساهای متفاوتی وجود داره؟ خب حالا ببینیم پولس چه چیزهایی رو در مورد مقابل با مشکل تفرقه به قرنتیان آموزش داده. در جلسه قبلی که در مورد اول قرنتیان صحبت کردیم ما یاد گرفتیم که این نامه یک نامه اصلاحی از طرف پولوس شبانی که مؤسس کلیسای قرنتوس بوده برای مقابله با مشکلات کلیسای قرنتوس به ایمانداران آنها نوشته شده بود اولین مشکلی که پولوس به راهنمایی در مورد اون می‌پردازه مشکل تفرقه در کلیسا هست. با این عبارت شروع میشه که پولوس با مشکل تفرقه مقابله میکنه آیا مسیح تقسیم شده است آیا پولوس بود که برای شما بر صلیب رفت و آیا به نام پولوس تعمید یافتید خدا رو شکر میکنم که جز کریسپوس و گایوس هیچ کسی دیگر از شما را تعمید ندادم تا کسی نتواند بگوید به نام من تعمید یافتید به این وسیله پولوس شروع به راهنمایی در مورد تفرقه در کلیسای اولیه قرنتوس میکنه این مشکل شروع بقیه مشکلات در کلیسای قرنتوس بود. پولس توسط افرادی که در کلیسای خانگی خلوه فعالیت داشتند این مشکلات را فهمید. پولس از بقیه مشکلات هم از طریق نامه‌ای که این کلیسا برای او نوشته بود متوجه شد. در چهار به ابتدایی این نامه پولس به راهنمایی در مورد مسئله تفرقه می‌پردازه و به طرز استادانه و به طریق الهی پولس شروع به راهنمایی در مورد مساله تفرقه در بدن مسیح میکنه و این سؤال چهار کلمهای رو ایجاد میکنه آیا مسیح تقسیم شده آیا مسیح متعلق به گروه خاصی هست من معتقدم که این یک سؤال خیلی عمیق از طرف کسیه که میخواد مشکل تفرقه رو حل کنه همونطور که میبینید ما به عنوان یک ایماندار دعا میکنیم و شهادت میدیم که مسیح زنده است و همه جا حضور داره به این خاطر که او از مردگان قیام کرده و درون قلب ما زندگی میکنه در واقع عیسی مسیح در بدنهای ما زندگی میکنه بدنهای ما معبدی هست که مسیح در اونها زندگی میکنه حالا اگه اینطور باشه و اگه شما هم آدم باهوش و متفکری باشید وقتی نگاهی به این گروهی که در قرنتوس زندگی می کنند بندازید کسانی که اسم خودشون رو مسیحی گذاشتن و ادعا میکنند که مسیح در اونها زندگی میکنه انتظار ندارید که این مردم حداقل سر یه سری چیزها با هم توافق داشته باشن ما فقط یک عیسی داریم اگر مسیحی که در من و شما زندگی میکنه یک مسیحه پس ما نباید از او انتظار داشته باشیم که وقتی در شماس جور دیگری فکر کنه و وقتی در من جور دیگه‌ای فکر کنه ما نباید انتظار داشته باشیم مسیحی که در شما هست با این مشکل این جور برخورد کنه و وقتی در منه جور دیگه‌ای صرفاً به خاطر اینکه ما متفاوت از هم و در مناطق جدا از هم به دنیا آمدیم. این اصلا مهم نیست که ما کجا به دنیا آمدیم و یا پیش زمینه فرهنگی ما چگونه است. اگر مسیح در من و شما زندگی میکنه اینها اصلا فاکتور مهمی نیستند. تنها یک مسیح وجود داره و او بین من و شما تقسیم نشده. پولس با این سوال شروع میکنه. آیا مسیح تقسیم شده؟ کلیسای قرنتس به طرز ناامید ای تقسیم شده بود پس پولس در چهار باب ابتدایی این کتاب شروع به بررسی این مسئله میکنه و عنوان میکنه که مسیح تقسیم نشده. اگر شما تقسیم شدید، پس مشکلی در رابطه شما با مسیح وجود داره. اگر مشکل تفرقه اونها دور قضیه چند قطبی شدن رهبرانشون بود، پس حتماً مشکل در رابطه اونها با رهبرانشونه. پولس به راهنمایی مشکل رابطه اونها با رهبرانشون میپردازه و در بیشتر قسمت‌های چهار ابتدایی این کتاب روی صحبت پولس بیشتر با کسانی که جذب او شدند یا به عبارت دیگه پولس به طرفداران خودش در قرنتوس راهنمایی میده به قسمت هایی از کلیسا که می‌گفتند من به پولس تعلق دارم کسانی که این احساس رو داشتند که پولس رهبر روحانی اونهاست و اونها وفاداری خودشون رو اونطور که به پولس ابراز میکردن به رهبران دیگه نمیکردن وقتی پولس راهنمایی در مورد مشکل تفرقه در کلیسای قرنتوس رو شروع میکنه راهنمایی افرادی که قبلا تقسیم شدن شروع میکنه. مخصوصاً افرادی که دور خودش جمع شده بودن و پولس بخش فوق‌العاده‌ای رو در مورد فلسفه‌ی خدمت خودش به ما میده و سعی میکنه که به این افراد بگه نگاه کنید وقتی که من به قرنتس اومدم و شروع به بشارت انجیل کردم و شما ایمان آوردید اون کسی که این کارها رو انجام داد من نبودم اون روح القدس بود پولس داره اینو میگه وقتی که من به قرنتس اومدم این شخص من نبودم کسی بود که در درون من قرار داشت. اصلا مهم نیست که من چه کارهایی انجام دادم. مهم اینه که اون کسی که در من بود چی کار کرد. پولو سعی میکنه تا فلسفه خدمت خودش رو شرح بده که در چهار راز الهی خلاصه شده. من نیستم ولی او هست. من نمیتونم ولی او میتونه. من نمیخوام ولی او میخواد. من نکردم بلکه او کرد. ما این چهار راز رو در عهد عتیق هم دیدیم. موسا یکی از اونها بود و حالا در سراسر عهد جدید هم می‌بینید پولس به این رازهای الهی رهبری ایمان داشت اساساً این چیزیه که پولس در چهار باب اول توضیح میده. پولس چندین بار به با اونها میگه متعلق به من نباشید متعلق به مسیح باشید همونطور که در اعمال رسولان باب هجده دیدیم وقتی پولس به کورنتوس اومد تجربیاتی در خداوند داشت ما نمیتونیم بگیم که پولس در آتن ناموفق بود ولی میتونیم بگیم زمانی که به قرنتوس اومد بالغتر شده بود. فلسفه خدمت پولس در قرنتوس با فلسفه خدمت او در آتن فرق داره. پولس درباره تغییر فلسفه خدمتش در باب اول و دوم اول قرنتیان به اهالی قرنتوس میگه زیرا مسیح مرا نفرستاد تا تعمید دهم بلکه تا بشارت رسانم. ولی نه با حکمت سخنوری، مبادا قدرت صلیب مسیح بی اثر گردد. پولس این بیانیه رو با فرق بین تعمید و انجیل شروع میکنه تعمید هم ادامه داره تعمید هم در بین ایمانداران موضوع بحث برانگیزیه خیلی از افراد مخصوصاً با مدل و طریقه تعمید موافق نیستن پولس در اینجا در مورد نحوه و طریقه تعمید صحبت نمیکنه بلکه در مورد معنی تعمید حرف میزنه او در اینجا قسمت قابل توجهی رو به ما میده با توجه به این در اول قرنتیان باب غیر ممکنه که بشه از اون آموزه تولد تازه بر اساس تعمید رو استنتاج کرد با این اعتقاد که هرکس برای اینکه نجات پیدا کنه باید تعمید بگیره پولس بین انجیل که باعث نجات ماست و تعمید تمایزی قائل میشه او می مینویسه من برای تعمید دادن به قرنتوس نیومدم من برای بشارت انجیل اومدم من خوشحالم که تمام کسانی رو که توسط من به مسیحیمان آوردن تعمید ندادم تا بخوان متعلق به پولس باشن من از خدا ممنونم که شما رو تعمید ندادم، فقط یادم میاد که دو نفر از شما رو کریسپوس و گایوس رو تعمید دادم و کس دیگه یادم نمیاد، به این خاطر که مهمترین چیز اینه، من برای تعمید فرستاده نشدم من فرستاده شدم تا مجده نجات انجیل رو به گوش شما برسونم اگه شما برای اینکه نجات پیدا کنید باید تعمید بگیرید، تعمید باید بخشی از انجیل باشه تا شما رو نجات بده اگه تعمیدی که موجب نجات شما می میشد بخشی از انجیل بود پولس تمایزی بین این دو قائل نمی شد او میگه زیرا مسیح مرا نفرستاد تا تعمید دهم بلکه تا بشارت رسانم پس از گفتن این بیانیه پولس درباره چگونه بشارت دادن خودش صحبت میکنه و اینکه بعد از بشارت او چه اتفاقی میافته پولس در باب دوم در واقع به اصل مطالبی که در این چهار باب اول بیان میکنه میرسه در چهار باب اول این کتاب پولس به مشکل تفرقه در کلیسا میپردازه. پولس به افرادی که دور او جمع شدند و او را به عنوان شبانشون قبول دارن راهنمایی میده. او در باب اول این سوال رو میپرسه. به راستی حکیم کجاست؟ عالم دین کجاست؟ فیلسوف این عصر کجاست؟ بعد او این سوال رو میپرسه. مگر خدا حکمت دنیا را جهالت نگردانیده؟ وقتی که برای اولین بار کتاب مقدس رو خونده باشید در پیدایش باب سوم شما با این سوال مواجه میشید کجا هستی در پیدایش باب چهار با این پرسش مواجه میشید برادرت کجاست وقتی که به پیدایش باب هجده میرسید سوال اینه همسرت کجاست شما کلی از این سوالات کجا هستید در کتاب مقدس دارید خب اینجا یه کجا هستی دیگه هست به راستی حکیم کجاست کاتب خردمند، جدل کننده کسی که اهل استدلال و گفتگو هست کجا هست؟ قرنتیان خیلی در مورد استدلال و گفتگو با جدل معروف بودند. منشأ نظریه بحث و جدل از فرهنگ یونانی میاد. البته پولس به این موضوع اشاره میکنه که اغلب هستند کسانی که به عنوان یک فرد حکیم فکر میکنند، استانداردهای جهان همه جا روحانی نیست و کسانی که از نظر روحانی خیلی بالا هستند در جوامع دانشگاهی دیده نمیشن. خاکی هست که باعث رویش درخچه ایمان میشه خاکی ها اقلیمی هست که باعث رشد و شکوفایی درخچه ایمان میشه همچنین خاکی هم هست که در اون ایمان به سختی رشد میکنه اینطور نیست که ما از جوامع دانشگاهی به عنوان خاک و اقلیمی یاد کنیم که در اون این درخچه به خوبی رشد نمیکنه و به این معنی هم نیست که چون شما یک فرد دانشگاهی و یا محق قصدید نجات پیدا نمی کنید و همینطور به این معنی هم نیست که اگر بخواهید متعلق به عیسی باشید باید مغزتون رو کنار بذارید پولس در انتهای باب اول به ایمانداران قرنتس میگه ای برادران وعز خود را آنهنگام که خدا شما را فراخان در نظر آورید بیشتر شما با میارهای بشری حکیم محسوب نمی شدید و بیشتر شما از قدرتمندان یا نجیب زادگان نبودید. توجه داشته باشید که پولوس طوری صحبت میکنه که زیاد تملق آمیز نیست. بر اساس حرف های پولوس به این نتیجه می رسیم که وقتی در روز یک یکشنبه توی کلیسای خودتون جمع میشید با ایمان به اطراف نگاه کنید چقدر حکیم، چقدر دکتر، چقدر افراد نجیب، چند تا پادشاه، چند تا فرماندار، چند تا افراد سیاسی و یا بانفوز اینجا هستند. بر اساس استانداردهای دنیا حکیم زیادی وجود ندارند. تعداد زیادی مقتدر و افراد نجیب وجود ندارن. در سال 1743 گروه کره اندلس مسایا اجرا داشت و پادشاه جورج دوم هم برای همسرایی کردن هللویا ایستاد بعد از این اتفاق تماشاگران در هر گوشه ای از جهان از این رسم تقلید کردند در اواخر قرن 19 ملکه ویکتوریا عملکرد عالی از خودش نشان داد او نه تنها ایستاد بلکه تاج پادشاهی و اقتدار خودش رو از سرش برداشت او اغلب این حرف رو میزد که با یک کلمه بسیار کوچک وارد پادشاهی خدا شده این کلمه کوچک بسیار بود او این حرف رو به خاطر این حرف پولس زده بود نجیب های بسیاری نیستند. او برای این کلمه کوچک بسیار همیشه شوق گذار بود چون به این معنی بود که او محروم بوده افراد نجیب، افراد قدرتمند و افراد روشنفکر از فیض محرومند، اما واقعیت اینه که آنها در ملکوت بسیار نیستند. اما واقعیت اینه، خدا آنچرا که دنیا جهالت میپندارد برگزید تا حکیمان را خجل سازد و آنچرا که دنیا ضعیف میشمارد انتخاب کرد تا قدرتمندان را شرمنده سازد. خدا آنچرا که این دنیا پست و حقیر میانگارد بلکه نیستیها را برگزید تا ها را باطل سازد خدا دوست داره اینطور کار کنه. به خاطر اینکه راه درستیه. پولس به ایمانداران قرنتس نویسه من نیز ای برادران هنگامی که نزد شما آمدم راز خدا را با فساحت و حکمت بشری به شما اعلام نکردم زیرا عزم جزم کرده بودم در مدتی که بین شما هستم چیزی ندانم جز عیسی مسیح آن هم عیسی مصلوب و من با زف و با ترس و لرز بسیار نزد شما بسر بردم و پیام و وعز من نبا کلمات گیرای حکیمانه بلکه با برهان قدرت روح بیان شد. پولس به عنوان کسی که این قسمت از چهار باب ابتدایی اول قرنتیان رو نوشته واقعا میخواد این رو بگه پیرو من نباشید دور من جمع نشید دور من جمع نشید به خاطر این حقیقت که من تحصیل کردم و یا ذهن روشنی دارم. وقتی که شما ایمان آوردید چیزی که برای شما اتفاق افتاد در نتیجه کار روح القدس بود نه کاری که من انجام دادم پس پیرو من نباشید در این متن پولس یکی از زیباترین قسمت‌های کتاب حال نوشته رو مینیویسه این چیزی که باعث میشه نامه به قرنتیان یک نامه عظیم و عمیق بشه به این دلیل که ما باید از خدا به خاطر مشکلات کلیسای قرنتوس سپاسگزار باشیم به این خاطر که کلیسای قرنتوس مشکل تفرقه داشت ما از طرف پولس رسول یک قسمت فوقلاده در مورد فلسفه خدمت او و نیروی الهی پشت خدمت او رو دریافت می کنیم اول قرنتیان باب اول آیه هجده تا به انتهای باب دوم یکی از عظیم ترین قسمت های کل کتاب مقدسه به این خاطر که کلیسای قرنتیان یک مشکل روشنفکرانه در شک به رستاخیز مسیح داشت ما قسمتی فوقلاده در رستاخیز مسیح دریافت می‌کنیم. به این دلیل که کلیسای قرنتیان فاقد محبت بود. ما یک قسمت فوق‌العاده درباره محبت دریافت می‌کنیم. هر زمانی که شما به مشکلات کلیسای قرنتیان فکر می‌کنید، خدا را به خاطر مشکلات و سواستفاده از عطایای روح‌القدس شک کنید. حالا فکر می‌کنید چرا میگم که خدا را باید شک کنید؟ چون هر وقت پولوس شروع به راهنمایی در مورد مشکلی میکنه، ما یه راه حل عمیق روحانی دریافت کنیم که میتونیم اونها رو در مشکلات امروز کلیسای خودمون به ببریم. در اول قرنتیان باب دوازدهم پولوس در مورد عطایای روح القدس صحبت میکنه. خدا رو شکر میکنیم که های قرنتیان تمام این مشکلات رو داشتن. به این خاطر که در نتیجه مشکلات آنها هست که ما جایزه ای مثل جواهر دریافت میکنیم. ما بهترین راه حلها رو از طریق قلم روحانی پولس رسول دریافت میکنیم. یکی از امیغترین قسمت کتاب مقدس رو با شما در میون میذارم که در کل کتاب مقدس بی همتا هست. این قسمت یکی از راحل های نایاب هست که در مرکز این مشورت اصلاحی یا تعدیبی پولس در مورد تفرقه در کلیسا قرار داره. فکر می کنم که اگه در کلیسای قرنتوس تفرقه وجود نداشت، ما شاید هرگز این هدیه الهی پولس رو دریافت نمی کردیم. این پیام عظیم کتاب مقدس است که تمام ایمانداران واقعی باید اون را همیشه به خاطر بسپارند زیرا کیست که از افکار آدمی آگاه باشد جز روح خود او که در درون اوست بر همین قیاس فقط روح خداست که از افکار خدا آگاه است ولی ما نه روح این دنیا بلکه روحی را یافته ایم که از خداست تا را خدا به ما عطا کرده است بدانیم و از همین سخن میگوییم آن هم نبا کلماتی که آموخته حکمت بشری باشد بلکه با کلماتی که روح می آموزد. و بدینسان حقایق روحانی را با کلماتی روحانی بیان می کنیم، اما انسان نفسانی امور مربوط به روح خدا را رو نمی پذیره. زیرا در نظرش جهالته و قادر به درکشون نیست چرا که قضاوت درست درباره اونها تنها از دیدگاهی روحانی می از اما شخص روحانی درباره همه چیز قضاوت می کنه. ولی هیچ کس نمیتونه درباره او قضاوت کنه زیرا کیست که از فکر خداوند آگاه باشد تا بتواند او را تعلیم دهد ولی ما فکر مسیح رو داریم این یکی از قسمت مورد علاقه من در نوشته های اگه شما به روانشناسی تربیتی علاقمند باشید میدونید که پولس در آیه نه در این باره صحبت میکنه تا به این نتیجه برسه من از طریق چشم ها و گوش ها یاد میگیرم وقتی که شما یک سخنرانی رو میشنوید، مثل این درس، شما از طریق گوش هاتون یاد میگیرید. وقتی کتابی رو میخونید، از طریق چشم هاتون میآموزید. وقتی که شما به طور همزمان از گوشها و چشم هاتون میآموزید، ما به آن آموزش سمعی و بسری یا شنیداری و دیداری میگیم. برای همینه که تلویزیون یکی از قدرتمندترین وسیله های آموزشیه. اگه شما به طور همزمان هم ببینید و هم بشنوید، خیلی بیشتر میتونید بیاموزید و اونها رو توی ذهنتون نگه دارید چون به طور همزمان از دو طریق یاد میگیرید پولوس راه دیگری رو هم در این قسمت به ما خاطر نشان می کنه. راه قلب منظور پولوس از راه قلب احساسات و اراده شماست عیسی گفت اگر کسی این را خواست او دانسته است وقتی شما قضیه ای را با اراده و خواست خودتان و حس شاگرد بودن یاد بگیرید در حقیقت وقتی شما مثل یک شاگرد و murid شروع به یادگیری کردید شما از طریق قلب و اراده خودتون اون رو یاد گرفتید پولس این رو میدونست و قرنتیان همین رو میدونستند ولی پولس اینجا چیزی رو میگه که قرنتیان وقت یاد نگرفتن وقتی که شروع به یادگیری چیزهای روحانی کردید این تنها به موضوع یادگیری از راه چشم و گوش و قلب اشاره نمی کنه اگه شما شروع به یادگیری چیزهای روحانی کرده اید به راه دیگری هم نیازمندید به راه نیاز دارید براساس حرف پولس اگه شما راه روح القدس را نداشته باشید هیچ وقت چیزهای روحانی رو درک نخواهید کرد. حالا پولس شروع به دستبندی کردن خانواده انسانی میکنه. پولس میگه اینجا یه چیزی مثل انسان روحانی وجود داره. یه مرد روحانی روح خدا رو دریافت میکنه و براساس روحی که از خدا دریافت میکنه، ظرفیت یادگیری چیزهای روحانی و درک اونها رو دریافت میکنه. پولس از این تصویر استفاده میکنه. زیرا کیست که از افکار آدمی آگاه باشد؟ جز روح خود او که در درون اوست اگه من تصویری که پولوس میده رو توضیح بدم پولوس چیزی مثل این رو مطرح میکنه وقتی که شبانی موعظه میکنه یا آموزش میده او افرادی رو میبینه که روی نیمکت نشستن و به نظر خیلی باهوش و عمیقاً روحانی هست شبان میتونه تصور کنه که افرادش درباره موضوعی دارن فکر میکنن که همون لحظه داره در موردش صحبت میشه اگرچه فقط یک وجود در کل جهان هست که همون لحظه میتونه بفهمه اونها به چی فکر میکنن اون روحی هست که در بین کسانی که دارن موعظه گوش میدن وجود داره تنها روحی که در اونها وجود داره میدونه که اونها چی یاد میگیرند حالا اگه شبان هم روح اونها رو داشته باشه روحی که درون قلب کسانی که به موعظه گوش میدن وجود داره در بدن او هم وجود داره اون میتونه بفهمه که مردم چه چی چیزی یاد میگیرند او میتونه فهم کسانی که به موعظه گوش میدن به چی فکر میکنن ولی شبان نمیتونه روحی که در درون افراد هست در درون خودش هم داشته باشه این غیر ممکنه پولوس از این مفهوم برای تصویرش استفاده میکنه بعد پولوس میگه حالا مردم گوش کنید ما روح خدا رو دریافت کردیم و روح خدا میدونه تفکر خدا چیه روح افکار خدا رو میدونه به این دلیلی که ما روح خدا رو دریافت کردیم ذهنی مثل مسیح داریم خیلی از افکار خدا رو می دونیم. بعد پولس در مورد مردی که اینجا هست صحبت می کنه. در زبان یونانی انسانی هست که انسان نفسانی خونده میشه، انسانی که هیچ وقت روح خدا رو دریافت نمی کنه. پولس میگه در نظر این انسان تمام چیزهای روحانی حماقت هستند. او چیزهای روحانی رو درک نمی کنه. او فکر می کنه که آنها محض هستند بعد پولس این قسمت عظیم رو می نویسه. هیچ وقت این رو فراموش نکنید اما انسان نفسانی امور مربوط به روح خدا را نمیپذیرد زیرا در نظرش جهالت است و قادر به درکشان نیست به عبارت دیگه وقتی شما میتونید چیزهای روحانی رو بشناسید که در راه روح خدا باشید انسان نفسانی نمیتونه در راه خدا باشه پس اون نمیتونه چیزهای نفسانی رو بشناسه در باب قبلی نامه پولس به قرنتیان پولس انسانها را به دو دسته تقسیم میکنه به قول پولوس یک انسان وجود داره که میتونه روح خدا رو دریافت کنه و میتونه چیزهای روحانی رو درک کنه و دیگری انسان نفسانی و یا غیر روحانی هست کسی که نمیتونه چیزهای روحانی رو درک کنه چرا که روح خدا رو نداره اگر شما کلام خدا رو لمس کردید و بخواید که چیزهای روحانی رو به مردم انتقال بدید در مرحله اول شما باید برکات خودتون رو با کسانی که روحانی هستن در میون بذارید اگر شما با کلام خدا لمس شدید و بخواید که چیزهای روحانی رو به مردم انتقال بدید در مرحله اول شما باید برکات خودتون رو با کسانی که روحانی هستن در میون بذارید و کسانی که نفسانی هستند نمیتونن درک کنن که شما چی بهشون آموزش میدید به این خاطر که اونها روح القدس رو ندارن ظرفیت درک اونها به این که شما چه چیزی بهشون یاد میدید بستگی به روح القدس داره اونا باید در راه روح خدا باشن به این دلیل که تنها روح القدس که میتونه به اونها حقایق روحانی رو یاد بده. پولس میگه ولی ما نه این دنیا بلکه روحی را یافته ایم که از خداست تا آنچه را خدا به ما عطا کرده است بدانیم. آیا شما از حقایقی که روح القدس اونها را آموزش میده مطلع هستید؟ به عنوان کسی که آموزش های چیزهای روحانی را رو شنیدید، از این حقیقت مطلع هستید که یک نفر به شما بگه بله این همون پیغامیه که دیروز شما شنیدید. یا این همون پیغامیه که دیروز شما در نامه دیگه پولس به رومیان خوندید یا شاید روح القدس بگه این رو در این وضعیت از زندگیت به کار ببر یا اون یکی رو در اون وضعیت از زندگیت به کار ببر این راهیه که روح القدس به شما آموزش میده بر اساس حرفای پولس اگه شما روح القدس رو داشته باشید این ظرفیت و پتانسیل رو دارید که چیزهای روحانی رو یاد بگیرید پس توجه کنید که روح القدس یک معلم روحانیه. من فکر می کنم حضور روح القدس رو در بررسی کتاب رومیان در جلسات قبلی حس کردیم. من درسم را با دعا شروع کردم و از خدا خواستم تا چیزهای روحانی در کتاب رومیان رو به ما آشکار کنه و او خودش معلم ما باشه. من ایمان دارم که روح القدس بود که آموزش میداد به این خاطر که حقایق کتاب رومیان تا اون شب انقدر برای من آشکار و شفاف نبود. بعد از یک کلاس دو ساعته چند نفر ایستاده بودن تا با من صحبت کنند یکی از اونها دانشجو بود حقیقت اینه که او دانشجوی این دانشکده بود و صاحب ذهنی باز و پذیرا بود او اونقدر منتظر بود تا دیگران صحبتشون با من تموم بشه بعد خیلی عصبانی به من نگاه کرد و گفت جناب کشیش میخوام بدونی که من دو ساعت تموم بهت گوش دادم و یک کلمه از حرفات رو نفهمیدم از وقتی که شروع کردی تا وقتی که تموم شد من هیچی نفهمیدم من نمیتونم درک کنم که این مردم چطوری میتونن همینجوری بشینن و خیلی علاقمند به حرفات گوش بدن در حالی که من هیچی از حرفات نفهمیدم او خیلی عصبانی به نظر میومد من او رو به اسم صدا کردم و گفتم خب من تلاش خودم رو کردم که خیلی ساده حرفمو بزنم فکر می کنم کمی با او سنگین حرف زدم او گفت خب من میخواستم احساسم رو با شما در میون بذارم گفتم تو حتما یادته که من وقتی میخواستم شروع کنم دعا کردم و از روح خواستم تا چیزهایی که می یاد بگیریم رو خودش به معشکار کنه تو از او خواستی که این کار رو بکنه او به من نگاه کرد و گفت من یک کاتولیکم گفتم خب کاتولیک ها میتونن دعا کنن کاتولیک ها هم میتونن از روح القدس درخواست کنن تا بهشون آموزش بده آیا تو تا حالا از روح القدس درخواست کردی که این چیزا رو بهت آموزش بده با وجودی که او مرد بی بود ولی من براش دعا کردم او کاتولیک بود او دو ساعت اونجا نشسته بود و از این که نمیتونست حقایقی رو درک کنه حسابی به هم ریخته بود وقتی که او روح خدا رو برای یادگیری نداشت مجبور نبود که اونجا بشینه حالا من دوست دارم اینجا یه مکسی بکنم و از شما این سوال رو بپرسم آیا شما درس های دانشکده کوچک کتاب مقدس رو درک می‌کنید؟ یا شما هم مثل این مرد جوان که درس ها رو درک نمیکرد هستید اگه شما هیچ وقت دعا نکنید و از خدا نخواهید که به شما در درک کلام خودش کتاب مقدس کمک کنه هیچ فرقی نمیکنه که هر روز کلام خدا را بخونید یا نه؟ شما نخواهید تونست کلام خدا رو درک کنید هیچ فرقی نمیکنه. حتی اگر ضریب هوشی شما بالای 170 هم باشه این چیزهای روحانی رو درک نخواهید کرد مگر اینکه دعا کنید تا روح القدس خودش برای شما باز کنه پدر من تنها تا کلاس سوم درس خونده بود او روی صندلی گهوارهایش تو اتاق مینشست و کتاب کوچکی رو باز می کرد و از یک کتاب تفسیر کمک میگرفت تا درس‌های روز یکشنبه رو که شنیده بود درک کنه هر دفعه که سندلیش رو تکوم میداد میگفت اوه این فوقالعاده است این عالیه. ما بچه ها که بعد از سالها این جمله رو میشنیدیم میفهمیدیم که یک چیز ای باید توی این کتاب کوچک که اسمش کتاب مقدسه باشه. این روی ما تأثیر میذاش. پدر من فهم ای در مورد کتاب مقدس داشت. چه کسی به پدر من مفهوم کتاب مقدس رو یاد میداد وقتی که من مطالعه کتاب مقدس رو در کالج و سمینارها شروع کردم. او میخواست من چیزهای بیشتری رو از زمانی که به اونجا رفتم یاد بگیرم. ما وقت زیادی رو با هم میگذروندیم و برکاتی که از کتاب مقدس میگرفتیم با هم درمیون میذاشتیم یه روز من متوجه شدم که او خیلی بیشتر از من میدونه ما وقتی معمولا یک کتاب از کتاب مقدس رو با هم میخوندیم من هر چیزی رو که بلد بودم به او میگفتم. ولی در آخر او به من می‌گفت: "اما تو نفهمیدی." و این رو درک نکردی اون موقع من میفهمیدم که او خیلی از من جلوتره روح القدس بود که به پدر من کتاب مقدس را آموزش میداد روح القدس به همه کسانی که میخواهند این کتاب رو بفهمند آموزش میده و این خیلی منصفانه است اگه بر اساس ذریب هوشی یا آیکیو یا تحصیلات یا ثروت بود فقط کسانی که در جامعه مزیت داشتن روحانی می شدن ساختار روح القدس طوریه که همه میتونن یاد بگیرن یادگیری حقایق روحانی بر اساس خواستن، جویا بودن و کوبیدن هر کسی که بخواهد دریافت خواهد کرد. هر کسی که بجوید پیدا خواهد کرد و هر کسی که بکوبد برای او باز خواهد شد. در لوقا باب یازده آیات 9 و اینطور میگه: پس به شما میگویم بخواهید که به شما داده خواهد شد، بجویید که خواهید یافت، بکوبید که در به رویتان گشوده خواهد شد. زیرا هر که بخواهد به دست آورد و هر که به جویت بیابد و هر که بکوبد در به گشوده خواهد شد. وقتی که خدا به شما روح القدس رو بده، بر اساس حرفای پولس، شما راه روح خدا رو دارید و میتونید چیزهای روحانی رو درد کنید. افراد جسمانی و غیر روحانی نمیتونن شما رو درد کنن، اما شما میتونید چیزهای روحانی رو درد کنید. باید این قسمت از اول قرنتیان باب دوم آیات 9-16 رو به خاطر بسپاری. این قسمت دارای آیات عظیمی از کتاب مقدسه پولس این آموزه های عظیم رو به ما میده به این خاطر که کلیسای قرنتوس تقسیم شده بود. افراد کلیسا هر کدوم دور یک مسئول جمع شده بودند. پولس به کسانی که دور او جمع شده بودند راهنمایی میده. پولس میگه من کسی نیستم که پیرو من باشی. من کسی نیستم. وقتی پولس ایماندار شد، او هویت یهودی خودش رو کنار میذاره. او اسم یهودی خودش رو که شاول بوده عوض میکنه شاول به معنی کسیه که بزرگه و او اسم پولس رو برای خودش انتخاب کرد که معنیش میشه کسی که کوچکه یعنی هیچکس. من حقیقتا کسی نیستم من تنها وسیده‌ای برای خداوند هستم خدمتگزاری که از طریق او روح القدس در زندگی شما کار میکنه پس متعلق به خدا باشید نه به من در باب سوم پولس طبقه بندی دیگری از انسان رو به ما میده انسان نفسانی و انسان روحانی حالا او میگه ای برادران من نتوانستم با شما همچون اشخاصی روحانی سخن بگویم بلکه همچون اشخاصی نفسانی سخن گفتم یعنی مانند کسانی که در مسیح نوزادن. در باب سوم پولس مینویسه من شما رو چی صدا کردم این برای پولس خیلی سخته که بدونه چطور باید اهالی قرنتوس رو صدا کنه او در آیات ابتدایی که به اونها تقدیس شده در خداوند نام میده به تشریح مشکلاتی که اونها دارن میپردازه ما میدونیم که اونها فوقالعاده نبودن حالا اینجا اینطور به نظر میاد که پولس میگه شما میتونید یک انسان روحانی یا یک انسان نفسانی باشید. پولس میگه من به شما شیر دادم نگوشت زیرا آمادگی آن را نداشتید و هنوز هم ندارید چرا که هنوز نفسانی هستید وقتی در میان شما حسد و جدال هست آیا نشان آن نیست که نفسانی هستید؟ آیا مانند انسان معمولی رفتار نمی کنید زیرا وقتی کسی میگوید من به پولس تعلق دارم و دیگری میگوید من متعلق به آپولوس هستم آیا انسان‌های معمولی نیستید در باب سوم پولس به راهنمایی مشکل رهبران می‌پردازه پولس میگه مگر آپولوس کیست پولوس کیست آنان فقط خادمانی هستند که خدا به هر کدام وظیفه‌ای سپرده تا شما به واسطه ایشان ایمان بیاورید شما باید به رهبرانتون طبق این آیات احترام بذارید. من بعض را کاشتم و آپولوس آن را آبیاری کرد اما خدا بود که موجب رویش آن شد پس نه کارنده کسی هست و نه آبیاری کننده بلکه فقط خدا که رویاننده است، آنکه که و آن که آبیاری می کند هر دو یک هدف دارد و هر یک به فراخور مهنتی که میکشند پاداش خواهند یافت ما فقط همکارانی هستیم متعلق به خدا و شما مزرعه و ساختمانی متعلق به خدایی او گفت آپولوس و پتروس و من همه ما وقتی که ایمان آوردید برای خدا کار می کردیم و اگه شما می بدونید که باید به کدوممون احترام بذارید به ما به دیده یک خدمت گذار نگاه کنید به این معنی که ما بندگان خداییم بعد با این دید نگاه کنید من دانه هایی رو کاشتم و آپولوس به اونها آب داد ولی چه کسی اجازه داد تا این دانه ها تبدیل به گیاه شوند خدا باعث شد که این اتفاق بیفته بعد پولس میگه. نه پیروه آپولوس باشید و نه پیرو من به این خاطر که ما کسی نیستیم متعلق به خدا باشید پولس نتیجه گیری خودش در آیه 21 بیان میکنه. پس دیگر کسی به انسانها فخر نکند زیرا همه چیز متعلق به شماست جلال شما در انسانها نباشد و متعلق به انسانها نباشید جلال شما در خدا باشد و متعلق به خدا باشید تنها خداست که انسانهایی رو انتخاب میکنه که در دنیا کسی نیستند انسان‌هایی که ضعیفند انسان‌هایی که مثل دیگر انسان‌های تحصیل کرده قوی نیستند خدا فقط افراد ضعیفی رو انتخاب میکنه که فکر میکنه فخر و جلال اونها در خود خداست نه در انسان‌های دیگر فخر او خداست اجازه بدهیم جلال و فخر او در خدا باشه این نتیجه راهنمایی‌های پولس در زمینه تفریقه کلیسای قرنتوس هست. متعلق به انسان ها نباشید. متعلق به خدا باشید و فخر شما در او باشه. عزیزان چه راز بزرگی رو از پولس رسول دیدیم. خدا از کسانی استفاده میکنه که ضعیفند و ساده تا در اون فخر کنند. من برای این قضیه سپاسگزارم ولی ما باید مواظب باشیم که نباید متعلق به انسان ها باشیم و متعلق به مسیح باشیم. آیا فخر شما در مسیح و با او رابطه خوبی دارین؟ دائمان اینه که این درس ها باعث گرمی و تشویق شما در ایمانتون باشه. از شما ممنونم که متعهدید تا متعلقه به مسیح باشید و از همه شما میخوام که از دیگران هم دعوت کنید تا در مطالعه کلام مقدس خدا با ما همراه باشند. تا برنامه بعدی فیض و آرامش خدا بر شما و خانوادتون قرار بگیره.